جمعیت مسلمان مسلمانان مسیحان کمتر است در سوریت مسلمان حق هستیم و از 1400 سر گذاشته جمیت ما کمتر است خب از اونها 2016 سر رست شده از ملاد حضرت مسیح 2016 سر رست شده از ما 1400 شده اونها پس ودیمیتر اما این دلیل نیست کرا اونها بیشتر هست الکی که مسیحیت بیشتر در جهان در بین مذاهب حقا ادیان الهی ادیان الهی مسیحیا جمیعت اولو دارند به میلیارد جمعیت مسیحیا است یک میلیارد و 700 میلیون است مسلمان‌ها هستند میلیارد در دنیا بدون دین هست اینها هیچ چیز ندارند و یک میلیارد دین بر ادیان مختلف چیلیا هستند و بقیه اینها هستند که مختلفه حالا دو میلیارد نهادن و نذبی مسلمان مسلمانها میشن 4 میلیارد نهادن 1 میلیارد بدون دین ده, ده کل آلان اصلا دین نداره اینها مصر حیوان زندگی میکنن و یک میلیارد اونها هم روی دینهای خود چین رو هندوها اونها دیگه برای اونها پراکنده اند که داخل اونها هندو هست و دیگه گودائی هست حالا چرا جامعه مسیحیت بالا رفت علت بالا رفتن جامعه مسیحیت تنبلی و بی خیری مسلمان ها بوده زمان اروپا دست مسلمان ها بو این اروپایی یی همین دست مسلمان ها بوده اسپانیا دست مسلمان ها بود و کل کشورهای اروپایی و او اکثر اونها مسلمان آفریقا اثر اکثر هم مسلمان مودن یک کاری شو بعد از فروپاشی اندلس سقوط اندلس که صورت گرفت و کشور اسلامی سقوط کردند و حکومت ها این برداشت شدهن جنگهای سلیبی شروع شد بعد جنگهای سلیبی که خیلی از رو به تاراج بردن یک چیزی وسط آمد اون چیزی که خیلی مهم هست حکام مسیحی شده مخلص و حکام مسلمانه شده ایاش امروزی هم نگاه کنیم در خود دیر مسیحیت خود دانشمندان و متخصصین دیر مسیحیت در خدمت مسیحیتن. اما مسلمانه ها تیوری هم که دین داخل به تونه هست هر جو دیره بقا الله میچ الله همینجا سوال اومدی بود هر کس رو در نظر میده در مسیحیت اینجوری نیست هر کس میذار بده هر کس طالب نظر نیست اونجا خود متخصصین و دانشمندان مسیحیت در خدمت مسیحیتن رشد بیکنن مسلمان ها برعکسه که دین بعد در خدمت اونها باشه هر جور دلش میخواد ایواشی بیکنن این میدونید که بوش که قبل از زمین اوباما رئیس جمهور امریکا بود اون یک مولای مسیحاست، دش استراتژیست، سبیل حمله داره، اما در اصل خود گوش یک راهب به تمام هست، یعنی یک مولای مسیحی کاملی است. امروزی هم نگاه بکو در دنیا عموم عموم مسیحیت در خدمت دینه، زمانی که برج‌های دو امریکا آمریکا رو زدن و دوباره امریکا به بحانه برج‌ها به افغانستان حمله کرد و بعد از اون به عراق حمله کردند، همون زمان حالا که پاپ دوم که مرکز تو ایتالیا هست برای یک سفر آمدی بود شوروی زمانیک امریکا میخواد افغانستان رو بزنه در روزنامه الان همون زمان آمدی بود ما پاکستان بودن همونجا آمده بود عروش گفته بود تا زوانی که این پاپ دوم دو یعنی رهبر مسیحیت به ماکار خودش در ایتالیا برنگردیم حمله نمی کنیم امریکا کجا ایتالیا کجا و پاپ چیکاراست اینجا پاپ رهبر مسیت جهان هست. اگر سلمانه رهبر واحدی دارن؟ این رهبر مذهبی واحد دارن پیدا کلی شما در یک شهر نداری ما در یک شهر نداری این قاد اختلاف برای ما درست کردن که باها نبا مستقید بشیم و مستقر بشیم اونها اینجوری نیستن در مسیحیت اونها پاپا و رهبرای مستقلی دارن هنوز هم داخل تادیه هستن کل مسیحیت جهان اگر پیروی میکنن هموز این آمده بود گفت از که رهبری مسیحیت برنگرد به ایتالیا ما همراه نمی‌کنی به احترام یک روحانی مسیحی پس کل حکای مسیحی و متخصصین مسیحی دانشمندان پزشکان و در خدمت مسیحیاتن مسلمان اینجوریان نه مسلمانان انی وقتی خود مسلمانی الا اونها رفتن بالا و با این روزی هم یک داخل خود پاکستان و این اندالبندی رو اینها که اینجا هستن میان مدرسه درست میکنن و برای خود فقرا پول خرج میکنن همین در حال حاضر کسی اومده او تعریف میکنه بی بچه پول میدن دو دخترا از مسیح صحبت میکنن هر مسیحیک میفرستان تبلیغی ما سرود تا کی روز میرن در حالی که مسیحیت برای 20 سال 25 سال بیس سال, سال تشکیل میشه برای خدمت مسیحیت در خود یک که ملاقات تا داخل کجا در شوروی گوش وا تبلیغات، چهار ماه پنجم گو، یه من ماموریت اون پنج ساله ی 20 ساله که اینجا باید کار کنن. برایم با این ماموریت کار میکنن و بعد این ایناست که خرج میکنن، هزینه میکنن. حالا شو بیخ بیخودش که تقریبا چند ساجلوات 7 درصد ساجلواتر یک آماری که من گرفته بوده، نزدیک به 1700 ایستگاه تلویزیون اونها برای تبلیغ مستیحیات و حمله بر اسلام اونها فعال کرده بودند. بیش از دو هزار اصطداع برای تبلیغ مسید اونها داشتن بس سلمانه چند تا دارن محواراش کن چند داره تبلیغ دین اسلام میشه سب تاثر جهانی بگیرین بدون از اختلافات دین اسلام تبلیغیسته 4-5 تا ماداری فقط داره اختلافات تبلیغ میکنن این مذهب بزن اون مذهب بزن این بدتی از اون بدعتیه. اما اما این کار نمیکنه. 2000 شبکه, شبکه تلویزیونی در دنیا فعال کرده فقط به خاطر اینکه دین مسیحیت تبلیغ میشه و مسلمان ها را سرکوب کنه آمار جهانی رو بگیری بعد مطلبی میشن الکی چه خبر در جهان چه خبر است بعد از اون در خود کنگره های خود آمریکا و اروپا در کنگره های اینها یه مبلغی رو بزرگ اونها تخصیص میده برای خود دین مسیحیت و حمله به مسلمان ها اینو خود تو باخبری که خیلی مبالغی گستر کلانی رو برای که به مسائل ما حمله تخصیص میده بس فرمان‌ها چیکار میکنه این نکنن ذخبره دفاع خودشون بگیرن حتی برای دفاع با این کارو نمیکنیم اصل این است که این اونها دارن میرن والا